بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين والهي وصحبه أجمعين أما بعد بحث قضا وقدر في آخرين ما تلايبوا في الدرس قضاش تداشتين خلاصة اينا ك وقدر فعل قدس جزء أفعال قدس علم قدواند علم السابق قدواند نسبة موجودات قبل زين كي بوجود بيان و خداوند در قرآن بفرمایات لا يسألو عما يفعل لا يسألو عما یفعل و هم هیچ کس نمیتونه بگه چرا خدا میدونه چطور خدا میدونه و امام محمد رحمه الله نهی میکنه از خوز و گفتن و این چیز و این قضایوها به زبان وردن لا يقال لیمه ولا کیف. نباید به زبان بیاریم چرا و چگونه لا يسأل عن را يفعل هیچ‌وقت خداوند سوال نمیشه که چرا و میدونه امام رحمه الله حرف جالبی داره در کتاب الشریعهش صفحه وما بعدش در بحث همین و قدر میگه الله عنهم لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طریق الحق وكذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم وكفروهم وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم ويبين للمسلمين قبيح مذاهبهم فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام على القدر بل الإيمان بالقدر خيره وشبه لازم قضاء وقدرا تا آخر از صحبت هایی که امام آجوری داره می اگر صحابه و تابعین موقف نمی گرفتن لعنش رو نمی کردن بدگیش نمی گفتن ناصدابهش رو نمی گفتن نهیمون نمی کردن از هم نشینی با این اشخاص می که ما جز این که تسلیم باشیم این که خدا گفته دیگه چیزی دیگه نداشتیم ولی ما این که صحابه رد دادن جواب اونها دادن و همچنین ما در پاسخ گویی به شبهات اونها در پاسخ گویی به شبهات شبهه ولی مجالسات اونها همنشینی به اونها اون قسمی که قلبش مریضه ما همونطور که امام احمد رحمه الله توصیه داره ما باید ازش پرهیز بکنیم و به تعصیم از اینکه در قلبمون تأثیری بذارن و شبهه در قلبمون بیفتن که که سبب بشه آیه یا نسی از قرآن یا نسی از سنت را بکنیم يقول الإمام أحمد رحمه الله ومثل ما كان مثل مثله في القدر ومثل ومثل أحاديث رؤية كلها مثل هذه القدر أهم مسائل مثل هذه القدر مثل رؤية خلاص عند الرزق يوم ما كيشل وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع هاشن كي بقششاد نوصل زي بريد عشان وشان شاد تاس بقرزه شاد قرزة شف إيش بيا بدبيني إيش بياش بد ببينها شاء بد تعلمها وسبب منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها بل كبيان إيمان إيمان دستور وشئ إن مسائل اعتقادي غيب بعشاء وأن لا يرد منها حرف واحدة يك حرف نبض راد بكله و من الأحاديث المأثورات عن الثقات وهمشنا حادثة دجال كمأثورا ثابتا مع أسناد الصحيح الثقات رواياته وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره نجد إن مسائل رؤية خداوات قضا و قدر الهی با کسی مناظره نکنه ولا يتعلم الجدال مرد ولا علم کلام بگید که من علم کلام میآموزم تا اینکه جواب اونها رو بدم خیر امام شافعی رحم الله میگه کسی که اگه دنبال علم کلام رفت او را سمر اولنگ بکنید وارونه توی کوچو خیابون بچرپروش با دمپایی کوتکش بزنید این عاقبت کسی که دنبال علم کلام باشه تمامی ائمه همشون غصه دادن کردن که دنبال علم کلام نری فلسفه و منطق نری البته شیر چرا از فلسفه و منطق مرغ پرهیز دادن و اینجا هم همین طور ما محمد نه میکنه از جدال و الله يتعلم چرا چون جدال جدل کردن از کی اومده از یونان از فلسفه یونان بعد از این کتاب های یونان ترجمه شد فلسفه و متکلمین همه در شک گفتادن در مورد علم خدا، در مورد استوای خدا بر عرش، در مورد رؤیت خداوند، خب خدا دیده میشه، پس خداوند در یک مکانی هست، پس خدا منحصر مکانه مکانی خدا جسمه، هی hey, فلسفه رو پشت فلسفه، خب نراسو گفته که جسم نباید باشه، همش آخرش ختم میشه به اون فلسفه یونان، به اون چیزی که ارسطو به عنوان معلم اول گفته. جدل رو یاد نگیرید، چون جدل سبب میشه که شما بدبین میشید نسبت به قرآن و سنت. کأن الكلام في القدر والرؤيه والقران که شما بحث اینجا به عنوان اصل اسولی از اصول سنت که مبتدعين مخالفت کردن با اهل سنت سه تا اصل اعتقادی رو بیان میکنه یکی خضیه قضا و قدر که علم سابق خداونده یکی مسئله رؤیت خداوند که خداوند در روز قیامت دیده میشه که معتزله ردش می‌کنه ولی اشعریه و معتزدی قبولش دارن. ما سهمي مساله اعتقادي بحث قرآن اینکه كلام خدا هست و مخلوق <تصفيق> نیست سخن خدا سخن پروردگانه و خدا من سخن گفته چطور سخن گفته ما نمیدونیم فإن الكلام في القدر والرؤيا والقران وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه مكروه ومننهی شدیم چرا نهی شدیم چون خداوند در قرآن گفته ولا تخفوا ما ليس لك به علم چیزی که دربارهش علم نداری سخن نگو چطور مثلا خداوند علم سابقش کسی میتونه بگه مثلا خداوند چطور دونسته چطور قبل از که مخلوقات را خلقت بکنه خداوند دونسته علم را از کجا آورده که هنوز که روح نداده چطور خداوند دونسته آیا علم خداوند فلان اینطوری اون یا اونطوری یا درباره استوا خدا چگونه رفت بالا کسی میتونه بگه خدا پله گذاشت بال گذاشت معاذ الله سبحانه و تعالی خدا پاک این کسی میتونه داره درباره خداوند بکنه اونایی که میگن خدا مستوی شده کسی بوده از اونها که بیاد خدا را تشبیه بکنه مثال بزنه برای خدا حاشا و کلا کسی بگه خدا مثل منه مثل انسان وفت بالا یا مثل پرنده که این کفر شده به نصوصی که خدا در قرآن گفته لیسه که مثل ایشه خدا هیچ کس مثل خدا نیست خدا میه قل هو الله احد خدا یک کس متفرده در اسما و صفاتش در وحدانیتش حبوبیت و الوهیتش یک کسی دینا مثل انسانه مشان اونهایی که به خداس خدا را تشبیه میکنن یا تمثیل میکنن، مثلیت برای خدا قرار میدن، اینها نقض آیات خدا، قرآن، خدا قرآن، قرآن، کلام و, و سخن خدا دانم میکنن. هیچ کس نمیتونه بگه خدا چه رفت بالا. این بدون علم صحبت کردنه، هیچ علمی ما نداریم، کی میتونیم فهمه یک چیزی که میخوام درباره سخن بگیم بعد باید یا خودشو دیده باشه یا مثل خودش. مثلا من میخوام درباره حیونی مثل فیل صحبت بکنم، میگم به جای بینی یک لوله ای. فیل کسی مثلا برقدر نبوده باشه، کسی ندیده باشه. بگم بینی، ولی لوله رو کسی دیده باشه. بگم به جای بینی یه چیزی لوله‌مانند دو سه متر داره که با اون آب می‌میوشه. طرف میتونه تخیل بکنه، چون لوله رو دیده و بینی رو دیده، تخیل بکنه خرطوم فیل چطوریه؟ مخلوقه. ناگهان یک مخلوق جایی ما میتونیم واسپش بکنیم چون دیدیم. و جای بعضی از مخلوقات رو نمیتونیم بخش بکنیم مثلا قبول داریم که ملائکه از نوره یا نه همه قبول داریم ملائکه از نورن. خب این نور ملائکه چطور شستت و بال داره شما برای ما اگر مسئله محسوس بزنیم نور نور چرا، نور خورشید. ما این نور میتونیم تخیلش بکنیم که این نور دارای بال باشه یا دارای دست باشه و کافی؟ تو بیا و بکنیم این میتونیم یا حتی اذا فزعن قلوبیم ملائک قلب دارن من از قرآن خب چطور قلب دارن و از نورن چطور بلا که میرن بالا میان پایین کسی نمیتونه در بارش اصحار نظر بکنه چرا؟ چون هیچ کس اونها را ندیده جز رسول خدا و پیامبرانی که خداون خواسته که ملائکه را ببینن بله رسول خدا صلی اللہ علیه و سلم جبرهی را دید شستتا بالاش میدونه بسرش بکنه چون دیده ولی برای ما قابل تخیل نیست بال شداری مثل بال حافی ما بود یا مثل بال پرنده کدوم پرنده باز کبوتر چی بالی یا بال پروانه کسی میتونه این گستاخی را به خرج بده و بیاد بال جبرعی را تمثیل بکنه یا تشبیه بکنه هیچ کس نمیتونه در یک مخلوق انسان عاجز از تشبیه و تمثیل درباره خدا سبح اسم ربک خداوند اعلی و متعالی از باب اولا المثل الاعلى خداوند از باب اولا منزه از تمثیل و از اگر از قضا و قدر معنوشین که رسول الله صلی الله علیه و سلم می اگر درباره قضا و قدر دیدی که صحبت میشه شما دیگه توقف بکنید سخن نگیرید اگر دیدی چتی درباره قضا و قدر صحبت میکنه سخن به میاره میاد ميار میگه خدا چجوری مثلا دونسته لفظش اینه که رسول الله صلی الله علیه و آله جانجوی البانی هم تصحیحش در صحیحه اذا ذکر القدر فامسكوا اذا ذکر القدر کسی خاص بعدن دنبال اسنادش بره تحقیقش بکنه میتونه با این لفظ چشش بکنه اذا ذکر القدر فامسكوا اگر قضا و قدر کسی اومد دار بارش اظهار نکند نظر کرد از عقل خودش اونجا هست که شما متوقف بشید فهمش کنید چی می خواد بگی درباره علم سابق خدا چی میتونه چیزی بگه درباره خدا علم خدا چطور خدا دونسته چگونه بوده لما کی قال فان الكلمه في القدر والرؤيه والقران و غيرها من السنن مکروه ومنهي منه خداوند ما رو منع کرده فلا تدريو لله لفظ الجلاله ليس كمثله شيء خدا منعمون کرده لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدعى الجدالة ويسلم ويؤمن بالآثار يعني يك شخص حتى أنك شوية بأن حرفي كده لمزاني هذا علم الكلام شوية أصابت السنة رأي بكنام شوية حرفي موافقة بسنة باشه ولكن أن شخص سني نمشته إنك علم الكلام رو رو و ایمان بیاله به اون آثار حالا صحبت, صحبت این جا شاید تو زهن بعد این شبه این برای مطرح بشه پس شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب دور التعارض و عقل و نقل چرا با علم کلام و مدرد متکلمین داد چرا علم کلام را آموخت؟ نا ما این قدیه رو گفتیم و اینکه این که العلم اگر راسخ در علم شدیم اون اجازه رو داریم که با اونها جدال بکنیم و جادل هم احسن اجازه داریم که جدال بکنیم همونطور که رسول الله صلی الله علیه وسلم مجادله کرد همونطور که ابراهیم علیه السلام مجادله کرد با قوم خودش با ستاره پرستان با خوشی پرستان مناظره کرد ولی اگر قدمت راست شد اما غیر از این طالب علم نباید خودش در معرض خصومات و در معرض شبهات بیاندازه. چون شبهات انسان را مریض میکنه میل و تمایل و حب صنعتو در قلب ضعیف میکنه، به انسان بدین میکنه نسبت به احادیث و نسبت به قرآن. قال و القرآنو کلام الله وليست بمخلوک و لا یضعف ان يقول لیست بمخلوک. قال فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ لَيْسَ بِبَائِنٍ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَخْلُوٌّ وياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بالمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدع مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بالمخلوق كلام قدران سخن قدرانيك اسكتب فيك بحث عن كلام قدران سخن و گفتگوی هست بین یک معتذری و بین یک از عیمه اهل سنت اسم عبدالعزیز ابن یحیی کنانی کتاب الحیده هست این کتاب کتاب کچی تیجیه توصیل میکنم طلاب علم. حتما این کتاب را بکنم اینجا هم ما وقت من جان داره که ما بخوام مسائلی که تو این کتاب هست ما اینجا بازش بکنیم و بخوام اینجا مطرحش بکنیم امام ابن عبد العز حنفی در تحریرها منقبتونه ازش خیلی از ائمه لالاتویی از این کتاب نقد خیلی از ائمه نقد میکنه هرچند که بعضی از لحاظ اسنادی انتقادش کردن ولی که محققین این کتاب کتاب رو نسبت به امام عبدالعزیز کنانی ثابت میکنن بحث کلام بنوان عنوان اینکه کلام سخن خداوند هست خداوند در قرآن ترین بیان میکنه اما کن لبشرن اما کن بشرن و اما کن لبشرن ان یکلمه الله الا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله لمنها يخطاب قدوان قدش بنسبة في يومبران قدش يوبيان بكنا وما كان لبشر أن يكلمه الله يكلمه الله درسي الله فاعل يا بحول فاعل كيف سيقوم بك؟ قدوان بابا يأتبوشت حجاب بكيف سيقوم بك بموسى وبرسول الله صلى الله عليه وسلم بموسى وكلم الله موسى تکیم زنابشانی در کتاب کشفشی میگه درباره وکلم الله موسا تکیم مرسالیه احترام داره کلام خدا مخلوقه چی میگه میگه میگه کسی این قراءت را بکنه بگه وکلم الله الله بکنه فاعل کافر الله فاعلی است اینجا الله مفعوله وکلم الله ها الله چیه مفعوله یعنی موسا تو خنگو با با الله نه الله با کی با موسا الان این تحریف نه؟ تحریفه چه چیزی سبب شد که در تحریف بیفته زبخشری که یک لغوی بود؟ چه چیزی سبب شد در تحریف بیفته؟ علم کلام علم کلام سبب شد که چی؟ سبب شد که بیاد بگه قدابا با موسی صخان نگفته علم کلام به یک نصوص مجملی از قرآن بدون کنار گذاشتن تمامی نصوص کنار هم دیگر بدون اینکه بیان قرآن و همه آیات کنار هم دیگر بذارن یک طرف را گرفتن بخیر را رها کردن ایمان یؤمنون و بعد کتاب و یک به و بعضی از کتاب را ایمان دارن بعضی دیگر نه استدلالش هرچیه الله خالق کل شی خداون خالق همه چیزها هست خداون خالق همه چیزها هست اولا کل دلویت در شمول نمیده قبلا از گفتیم. تدمروا كل شيء بأمر ربها هم يشترون بوسال بعد كوفة أصبح لا يرى إلا مسك كذي يواسي سنكار، صحابي من غير حفظ القاف القرآن المجيد من في النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه كل جمعة على المنبر باب حارج من بعد بفقطة القرآن المجيد، حار حار جمعي لا نعم شد مشودك الرسول غيره طاف القرآن كذي زي دي يعم بل إن جدات من كسرات مية درسه إن هي قسمتك كل قسمت الشيء. الله خالق کل شیء درسته خالق هر چیزی هست آیا خداوند خالق فعل خودش هم هست؟ آیا خداوند شی هست یا نیست؟ خداوند شیه خداوند شیه این روزی که اینی بحثانی بود مزدی بود گفتن که جهان این میگه تی خداوند جسمن شما عقیدتون انحراف تو و شما قائل به این هستید که خداوند جسمه. من گفتم حاشیه معاد الله حال الله هم ما یکنون حلوا کنیم هیچ وقت من چنین اذهقی ندارم خداوند جسمه گفت که نه شما گفتید خداوند چیزه. گفتم بله خداوند چیزه. ولی نه چیزها نه چیز مخلوق خداوند یه چیزی هست خداوند کل شیء هالک الا وجه الا استثناء شجر الا استثناء شیء خدا شیئه ولی چی؟ ولی نه مثل اشیاء نه مثل اشیاء مخلوق چون خداوند خالقه چون خداوند خالقه بله خداون، بل الله خالق و کل شیه، کل مخلوق چون خداون شیه ولی غیر از اون اشیای مخلوق این نسو را گرفتن بنوان یه طبله و جبه و خودش را قرار دادن که بله که سلف کافرن این آیه قرآن را قبول ندارن میگن که چی؟ قرآن کلام خدا هست و شیه نیست نه ما میگیم شی هست ولی نه مثل اشیا نه ما خیلی ها که گمراه شدن در بحث اسم و صفات خداون مشکل اصلیشون اثبات بحث قدر مشترکه بحث قدر مشترک قدر مشترک چیه قدر مشترک در بحث نصوص خود خود می اشاره میکنه که خیلی به سببش گمراه شدن اثبات یک صفت یک وسی برای خدا در شأن خدا اومده و در شأن مخلوقم اومده مثلا شما در قرآن دارید ان خلقنا الانسان من نطفه ام شاجا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انسان خلق کردیم که بشنوه ببینه درسته سمیع بصیره انسان ثنیا بصیره بناس قرآن دا بری خودش میگه ان الله کان سمیع بصیره خدا من سمیع و بصیره هر دو تا کلام خداست آیا شنیدن دیدن خدا مثل شنیدن و دیدن انسانه گفتم من سوالی از شما دارم خدا نفس داره نفس داره خدا نفس داره گفتن خدا یک ذاتی گفت که بله یک ذاتی است گفتم این ذات وجودی برای خودش داره یا وجود نداره خدا یه چیزی موجود یا یه چیزی موجود نیست گفتم که بله خب باید خدا یه چیزی باشه که نمیشه که یه چیزی نباشه آدم باشه خدا میگه میشه خدا آدم باشه یعنی ما داریم پوج رو می‌پرستیم یعنی سر سر چه چیزی رو داریم خدا باید یه چیزی باشه پس خدا یه چیزی هست اصلا حرف من همینه من میگم خدا یه چیزی هست ولی نمیشه چیزها نمیشه مخلوقات نمیشه منعون از کجا میدونیم که خدای چیزی هست مثل ما مثل ما نیست از کجا میدونیم خدا یک ذاتی هست یک نفسی هست مثل نفس ما نیست نصوص قران خدا در قرآن میگه تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسك درست؟ خدا در قران میگه كتب نفس كتب ربکم علی نفسها رحمن ای قبل تعلم ما فی نفسی اثبات نفس برای چی انسان درسته ولا اعلم ما فی نفسك اثبات نفس برای چی عندها خدها في القرآن مكتوب ربكم على نفسه الرحمة خدها نفس ذره نداره نفس ذره ام ذاتك وتصفت واستمعتك لنفسي اثبات النفس برائيتي خدها ار سؤال خدها في القرآن ميجي كل نفس ذائقة الموت كل نفس هر نفسي بدها تميرات ايا خدا عم ميرا شو را خدا كل نفس خدا قلت لي درست هر نفسي بدها بيميرات چرا نفس خدا که ما خدا هم نفسه و اصطلعت که نفسی و الله نفسه چرا اینجا کل بر برشمول نمیده چون لغت عربه با توجه به لغت عرب و نصوص قرآن فهمیدیم که نفس خدا غیر از نفس انسانه شنیدن خداوند غیر از شنیدن انسانه دیدن خداوند غیر از دیدن انسانه رفته به بالای عرش غیر از رفته به بالای عرش ما هست سخن خداوند، کلام خدا, خدا غیر از سخن گفتاره، ماها است که از جسمیم، خدا خدا خداوند اثبات زندگی برای خودش میکنه و اثبات زندگی هم برای ما میکنه. خدا در قرآن میگه یخ رجل حی من المیت. اثبات حی و زندگانی برای انسان میکنه. عبدالجبار، قاضی عبدالجبار در اصول سمسی میگه الله حیم حي بلا حیات خدا اسمش حیه می‌پیه حیاتی نداره زندگانی نداره خدا زنده نیست. چون اگر بگی خدا زنده هست زندگانی داره پس خدا, خدا میشه مثل انسان حی انسان حیه خدا میشه حیه پس این شرک کفره این این شرک برای خدا ونده پس حیه اسمش حیه پس حیاتی نداره زندگانی نداره سبحان الله خدا ونده برای خودش میگه وتوکل علی الحی الذي لا يموت خدا بین حیی که نمی میره ولیjisی انسان یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی انسان حیی که می میره انسان مرد براش هست نفس انسان کجا که می نفس خداوند بینیدها حی قیومی که نمیره کجا پس نفس خداوند یه چیز دیگه هست زندگانی خداوند یه چیز دیگه هست شنیدن و دیدن خداوند یه چیز دیگه هست استوای خداوند یه چیز دیگه هست و انسان و استفادش یه چیزی دیگر فلا تدریبود الله الامثال لیسه کمیدلهی شی و هو السمیعهی چی مسته خدا نیست و خدا من میبیند و میشنوند متاسفانه خیلی ها که از کلام عرب اللہی ندارم من مخارج عرب و خود امام شفیه رحمه الله درباره شناخت سخن خداوند مند خدا من چی داره میگه مثال میزنه برای ترافیک که براش مناظره میکنه یک مثال های لغری براش میزنه این کسانی که به لغت حرب آگاهی ندارن که نمیدونن که کلام خداوند خاصه و عامه مثلا همین کل نفس در قتل مؤکید آیه عام مخصوصه کسی که نمیدونه که عام مخصوصیه چیه لغت عرب استفاده کرده مثلا خداوند وقتی که در قرآن میگه یا ایها الناس این خلقناكم من ذکر و انثى شما از مرد و زن خلق کردید درسته ذکر و انثى نرو و یا آدم عیسی شما میشه اصلا میذانیم که آدم و عیسی شامل نمیشن؟ این آیه عامه ولی که عامی کسانی ازش استثناء میشن آدم و عیسی رو چه استثناء کردیم از کجا فهمید از نصوص خود قران اقال اذ, اذ قال ربك لاني خالق بشرا من طين آدم استين. از طين از گل و کچور یا عیسی ان مدع عیسی ان الله كما ذل عام میگه خبری که مخرج آن خاص بوده و معنای اونم خاصه مثل این نصوص آیات خاصیه که استثناء میشن از عمومات یا خبری که مخرجش عموم بوده و معنای آن خاصه و رحمتی وسعت کل چیز رحمت من هم جا فراد گرفته آیا جهنم فراد گرفته نه جهنم رو فراد نگرفته مثلا کسانی که قائل به فرای جهنم شدن چی گفتن گفتن خلاف رحمت قدوس خدا میگه میشه الرحمن رحیم باشه بعد جهنمم هم بمونه بله جهنمم میمونه چون خداوند اراده کرد کرده چون مراد خداوند چون هدف خداوند که جهنم بمونه و پایدار با با با با با با باشه تا یک شخص میاد استدلال میکنه و رحمتی واسعت کل شی رحمت خدا هم را فرا گرفته خیر جهنم را فرا گرفته چون درباره جهنم میگه لاملا ان جهنم منك ومن من تبعك اجمعين جهنم را خدا گذاشته برای ابلیس و طرفداران و حواداران ابلیس بعضی از اخباری که اومده مثلا بحث من و لغت عرب می کنم و برداشت از نس نس که باید یک شخص آگاه باشه به این مسائل تا بتونه برداشت بکنه مثلا خبر مخرجش خاصه ولی معنایش پس خدا در قرآن میگه وانه و هو رب الشعراء خداوند پروردگار ستاره شعرا هست مشتری نمیدونم یکی از ستاره بریدم که معروفه از اون یازده ستاره. خب آیا چون میگو فرب الشعراء پروردگار فلان ستاره هست؟ آیا دلیل و این پروردگار دیگر ستاره دا نیست پروردگار دیگر مخلوقات نیست؟ درسته این خبر خاصه ولی معناش معناش یا خبری میاد است عامه و معناش هم عامه بیان دیگر مثال ها اینه مثال های عمومی هست همه کس میدونه در بلی روح بله خوب حقیقت روح ما نمیدونی هر مخلوق روح داره چطور چگونه هست ما نمیدونی نصوص قرار و صنعت اینجاریه ما معناشو میدونیم بلی حقیقتشو نمیدونیم میدونیم حقیقت کلام چیه میدونیم کلام همینی سخن حرف گفتار حرف و سخن گفتاری که با هست. درسته است استمع لما يوحى استمع استمع شنیدن یعنی خداوند حرفی که میزنه سخنی که میزنه شنودنی هست یا نیست شنیدنی هست اصلا میتونه بشنوند سم میتونه بشنوه ما این شنیدن را میدونیم و اینکه حرف خدا سخنی هست که دارای صدا هست که شنیده میشه ما میدونیم درسته یا نه ولی که چطور خدا سخن را میدونیم با زبان سخن گفت چطوره ما کیفیتش رو ما نمیدونیم نمیتونیم درباره خداوند قضاوت بکنیم قل انما حرم ربيا الفواحش ما ظهر منها بطر وخرب ان تقول على الله ما لا تعلم این بدون نعبه درباره خدا صحبت کردنه مثلا یک چاک دیگه خدا جسمیه یا جسم نیست ممکنه میدونی خدا درباره خدا نفسی از قران داری ان از سنت داریم که اثبات جس بشه برای خدا یا اثبات جس باشه ما میگیم این کلام برای خدا نباید گفته بشه چون در قرآن و سنت چیزی ازش نداریم شکی نداریم جسمی مثل ما نیست جسمی مثل ما نیست چطوری هیچ مخلوقی نیست منظورت از این جس چیه اگر منظورت شیء بله خدا شیء ولی چه چیز نه مثل اشیای دیگر ادله و نصوص در قرآن و سنت از این خدا هم شیء زیاده قل ای شیء اکبر و شهاده قل الله چی چیز گواهش بلاتره میگه خدا یا خداوند میگه لیتا که مثله شیعون و هو سمیع البصیر خودش رو از اشیا استثقام میکنه و دیگر نصوصی که در قرآن سنت اومده نها کنیم فرزن ما قبول بکنیم جدلن جدلن قبول بکنیم که خداوند سخن نگفته خداوند سخن نگفته حرف نزدی، کلام کلام هم تو کشورهای و متبی کلام ناصی باشه خدا در قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم گذاشته، خداوند درباره موسی میگه وقت خدا قوم موسی قوم موسی من بعدی من حلیهم عجلا جسدا له خوار، یک جو سالی رو گرفتار سدایش بیرو میماد، همه کی می دونن که سدایش یه جو سالی چیه دیگه درست؟ آلم یروا انه لا یکلمهم ولا یهذیم سبيلا یعنی بینان، انه لا یکلمهم باشون هر کی نمیزنن، و راه رو را بهشون مشخص نمیکنن، لا یکلمهم الان اینجا عیب و نقصی یا نیست خدا عیبی که از اون خدا درستی بود عدم کلام عدم سخن این زشت در شعن یک شخصی که پرستیده میشه نتونه حرف بزنه نتونه سخن بگه چطور شما راضی شدید که بیاید یک شخصی یک شخص یک وطیرا که سخن به بپرستید این نهایت عقلی، نهایت نفهمی هست این علم داره خدا میگیره درسته از قانون موسا یک بوتی که سخن نمیگه یک بوتی که نمیتونه راه نمایی بکنه راه درست از درست بفهمونه به اشخاصی که داره برشن چطور آیا لیاقت پرستش رو داره نه نداره پس, از این آیه پس خداوند باید قابلیت سخن گفتن رو داشته باشه که راه حق را از نحق به مردم نشون بده و این وزیف های خداوندیه بن فارس ما بگیم نصوصی در قرآن در سنت اینا همه نصوص قابلیت, قابلیت تعبیر رو داشته باشه بگیم این همه تعبیر میشن یا مفهوم یا منطوق قابلیت تعبیر رو داره بگیم منظور از کلام سخن نفسیه بفارس تعبیرش بکنیم سوال ما از کجا میتونیم بفهمیم که خداوند سخن میگه یا نمیگه باید تو را ببینیم یا مثل او را ببینیم که هزار نظر بکنیم درسته چطور ما میتونیم بفهمیم خدا سخن چرا اونها یقینا قطعا قاطعا تأکیدا اصرار دارن کل متکلمی خلاف سلف سلفیت معروفه تمامی سلف از قدیم تا الان 1400 ساله از زبان سحابه تا الان گفتن خداوند سخن گفته به هیچ سلفی ما که خلافی میده هر کسی گفته خلافی جز اهل سنت نیست این عقیده ماست اعتقاد ماست ما اهل سنت را کسانی میدونیم که بگن خداوند سخن گفته حال شما متکلمین شمایی که اعتقاد دارید راه روشتون درسته شما میتونید یک نص از قرآن یا از سنت برامون ثابت بکنید که خداوند سخن نگفته خداوند نمیتونه سخن بگه یک نص یک دلیل مسئله غیبی مسئله حسی که نیست اگر حسی باشه که باید دیده باشید کسی که ندیده کس حسی باید ثابت بکنه مسئله غیبیه غیبی با وحی کجاست وحی؟ تورات، انجیل؟ قرآن؟ سنت؟ کجا؟ آثار صحابه؟ از کجا؟ بعد یک کسی بیاد دلیلی بیاره بر این که خداوند نمیتونه صحبت بکنه و صحبت اصلا نکرده کجا هست؟ این وحی رو برای ما بیارید حاشا و کلا از اینکه بتونن یک دلیلی حتی از امتای توشین از توراست بخوام انجیل هیچ چیزی هیچین ما دارید غیر از این که ما غیر از این نوسوز سریع گفتیم مانتوخش گرفته، مفهومش گرفته، بر اسبات کلام برای خدا بگ، خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان ما منكم من من رجل، ایلا وسيكلمه الله جل وعلا جل شأن او، و نیست بین او و بین او ترجمان، سی کلمه ربو، هیش کس شماری است، تک تک شمار، ما من رجل. هلا و سعی مگر اینکه خدا با باش صحبت بکنه، مترجمی هم بینشون نیست. این کلام نفسیه، این هم کلام تو قلب خداون ما تو قلب منده میکاره یا اینکه کلام حقیقیه، کلام سخن حقیقی کیفیتش ما نمی‌دیدیم. خداوند با تک تک بندگان روز قیامت سخن می‌گیرد. و هیچ مترجمی هم بین اون مخلوق و خالق نیست. چنانچه ما در این حدیثی که داریم در که رسول الله عليه و سلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فيقول له أتذكر يوم فعلت كذا وفعلت كذا حتى يذكر ما فعل في الدنيا بعد خدافان بيش ميقول ياد داري فلان عمله فلان عمره عنجام داري وخدافان تكتكأ عمال شراح بياد شميع برات بلد خدافان دار قرآن شنين ورسول قدام إن شنين تابعين كادن بما فرمودن وعلى رسول البلاق وعلينا تسلیم الله بلاغ شدن و گفتن و ما هم باید در مقابلش تسلیم بشیم پس قرآن کلام الله هست و مخلوق نیست و لا يضعف ان يقول لیسه به مخلوق نباید ضعیف بشی در مقابل این که بگید مخلوق نیست باید خاطعتا بگید کلام خدا مخلوق نیست چون کلام خدا فعل خداست لا يسألو همه يفعل فعل خداست کلام خدا فعل خداست فعل خالق. فعل الخالق هیچ وقت نمیتونه در مقابلش بگیم که مخلوقه کلام فإِنَّ کَلامَ اللهَ لَيْسَ بِدَائِنًا مِنْ کَلامِ قُدای چیزی جدا شده ازش نیست که در بیرون از خودش خلقتش بکنه باین با نیست این جدا شده ازش نیست خدا میگیم مستوی و عرش و مباین از مخلوقات این جدا از مخلوقات از کجا درفتیم این بینونه این کلمه مبائن از کجا درشته شده حدیث صحیح مسلم داریم که رسول الله صلی الله علیه چند تا حدیث داریم؟ یکی کان الله ولن می‌کند قبل وجود خدا بود و کسی غیر از خدا نبود. یعنی خدا غیر از مخلوقات بعد این خدا مخلوقات را خلق کرد. مخلوقات توی خودش خلق خدا نکرده خدا بود هیچ مخلوقی نبود. سپس مخلوقات را خلقت کرد. یعنی خدا مباین از مخلوقات، جدا از مخلوقات. درسته خدا مباین از مخلوقات. این یک حدیث. حدیث دومی که در بحث مهارتی شما که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم به جای رسید که جبریل گفت که من نمیام بس حالو فرمونه آیا خدا را دیدیگه دید حجاب و نور لو اشرقت صبحات و وجهی لحرقت مده بسری من, من, من خلقه من خلقه یعنی چی اگر این پرده نبود یک شعاع نور خدا از اون پردی ها اوبور بکند کل مخلوقات آتش تش میگیرند یعنی چی یعنی مخلوق غیر و خالق غیر جدا بودن پس مخلوقات یه طرف و خالق یک طرف دیگر سخن خدا که از خداوند خارج میشه. کسی میتونه بگه مخلوق خدا در خودش داره خلقت میکنه؟ خاشوا و کل خدا بخواد در خودش مخلوق را خلق بکنه یا در بیرون از خودش بیاد جزئی از خودش سخن خودش رو بخواد اونجا خلقت بکنه. فاین کلام الله لیست ببائن من منه و لیست منه شیء مخلوقیش. گفتم از سخنان خدا پروردگار سخنانی که گفته کلامی که نطق کرده صدای و صدای پروردگار صدایی که رسول الله صلی الله و, و موسی علیه السلام شنیده هیچ کدام از اونها مخلوق نبودن و ایا که و مناظره من احدث فی برحذر باش از اینکه مناظره بکنی با مبتدعی که در این مسئله اومدن در باره خداوند ازار نظر کردن گفتن خداوند کلام نداره و سخن نمیگوید و من قال باللفظ و غیره ومن وقف في كذاني قلتن بالله يعني كلامي هذا مخلوق از امام از ابن بخاري ياديشه وقتي تهديد شد و بقتل و نميدن به فلان بعد گفت لفظي بالقران مخلوقات انكه ترار بكنه چوري از قرار مبردن يعني زباني كه من دارم بايش نطق ميکنم نه اينكه مخلوقه مخلوقه منظور امام احمد بالشدد نهي ميگفت حتى از علماء کسی این حرفی نداری چون عوام الناس شاید باور بکنن که خدا قرآن مخلوقه شاید فکر بکنن که سخن خدا در قرآن مخلوقه حتی این حرفم نداری کسی بگه اللفت من با قرآن و یا توقف بکنه بگه من نمیدونم شاید مخلوق باشه شاید مخلوق نباشه اینها صاحب بدعته و هو كلام الله بدونید کلام خدا فهذا صاحب بدعته این شا صاحب بدعته چون میخواد گمراهی را ایجاد بکنه و میخواد ترار بکنه از اثبات کلام و سخن برای خدا بند فهذا صحیح بده مثل من قال هو مخلوق چه بگه لفزی به قرآن مخلوق چه بگه من نمیدونم مخلوق هست یا نیست چه بگه قرآن مخلوقه یا سخن خدا مخلوقه فرقی با هم دیگر نمیدونم و انما هو کلام الله نیست به مخلوق قرآن سخن خداوند و سخن خداوند مخلوق نیست So, سخنیش که پروردگاره، پروردگار خداوندیه پر که صبح آن سخن گفتن و وقت گردن و آبیامبرانش صحبت کرده. این اعتقاد اهل سنت است. و صلّى الله علیه و سلم علی محمد محمد.